أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم این يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم <تصفيق> بزرگترین مشکل بشر شرک ریشه تمام پلیدی ها شرک هر گناهی قابل غفران و گذشت غیر از شرک شرک را خدا به عنوان ظلم عظیم مطرح فرموده ان شرک لظلم عظیم ولی شعر چه عجب در انسان نشو نمو میکنه و چه کنیم که با این پلیدی که ریشه بقیه پلیدیا هست مبارزه کنیم نکنه که انسان ناخداگاه به این جهت سوق داده بشه ریشه شرک اصاسا جهل جهل خمیر مایه انسانه حقیقت انسان جهله <سؤال> خدا در قرآن مجيد مفرمو يد إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان جهولا طلو <تكلم> جهولة ذات ما ظلمانية ذات ما جهلة ذات ما عجزة هر چی علم داریم هر چی وجود داریم هر چه قدرت داریم از رحمت الهی موهبه الهی این جهل چه میکنه به انسان این جهل وقتی که به انسان رو میاره انسان فکر میکنه خب من یه چیزایی میفهمم بالقياس بقیه اش داره میفهمم یه چند کلمه خدا بهش داده ولی خصیم مبین با خدا میشه خیلی حرفها یه انسانی که از نطفه خدا خلقش کرده و هیچ بوده یهو با خدا در می‌اندازه کم کم میگه انا را بکمون اعلا لیس في جببتی الا الله به اینجا میرسه فا اذا هو خصیمون مبین و از این خط حرکت میکنه میگه ميك خب من خدا کیوریه نمدونم خب نمدون که نمدونی وره از کسی بپرس که میدونه تحقیق کن نه انسان جاهل او رو به چالش در میاره یعنی انسان دلش میخواد عالم باشه غرور علم داره خیال میکنه که عالمه وقت اگر به چیزی علم نداشت چکا میکنه؟ یه چیزی از خودش در میاره میگه اینه مثلا این کوها چطور درست شد؟ مثلا، فکر میکنه بگه چطوریه چطور نشد؟ سختشه که بره دنبال حقیقت فراسونی هم نیست و سختشه که بگه من خبر ندارم بزرگترین بزرگترین صفت خوب عالم این که اگر چیزی رو ندونست بگه لاعلم لا این لاعلم لا خیلی مهمه چرا؟ چیگه غالباً نمیگن لا علم، سختشونه نمیگن لا علم میاد یه چیزی به ذهنش میاد و اون میگه خب حالا نست در مسائل دنیاوی، در مسائل مادی قیامتهای بدی داره ولی وقتی که میرسه به خداشناسی و معرفت خدا به کجا ما میرسه ولی من معرفت خدا را یک مختار کنار بیرم حرف هایی که مثلا یونانی ها درباره جهان گفتند درباره انسان گفتند، درباره طبیعت گفتند، درباره آسمان گفتند بخونید کتاب هاشون حیعت بطنیموس رو بخونید این چی نوشته یک چیزای خرافاتی سرهم هم کردن آسمان چند قسمته، چند نوع هست، چند روح داره، بعدش این ستاره ها اینا میخایه نقره ایه که خدا زده که این آسان نگه داره یک حرفایی که آدم وقتی که امروز بخونه کسی که در کلاس های درستان از این بخونه میخنده. این چی گفتن؟ او روزی که فکر میگردن چی چیزی میفهمند؟ از جیب خود این چیزی میگفتند کتاب بعضی کتاب که متاسفانه کتاب های ما هم نشته مثلا حالت <تص <تص -FELIPE في فضائن> آدم چه سالی بود؟ 9000 و 20 سال قبله. واقعا این سالها چیه؟ امداد خدمت پیغمبر علیه صلی الله علیه و علیه و علیه و علیه و علیه و و علیه و علیه و علیه و علیه و و و حضرت فرام بدن خدا میگه و قرونن بین ذالکه کثیره. خیلی بود. اومدن باز خدمت حضرت امیر گفتن او امیر مومنی خدا چقدر وقت این جهان خرق کرده؟ یه نگاهی کردن چی رو میگن؟ گفتم میتونی حساب، حسابگری میتونی حساب بکنی. گفاره گفتم فکر نیمیکنم بتونی حساب کنی. گفت نه هم حساب رو هم خوندم حالا یه دو سه کلمه یک و دوسه سه و گرفته بود حساب خودم گفتم تو فرض کن در این دنیا پر از دونه گندمه یه متدمه از زمین گندم خب و فرض بکن یه موشه خدا خلق کرد که دونه های گندم یکی یکی از شرخ به غرب ببر مورچه یکی یکی گندم هایی که ملیون ها یا میلیارد دونه گندم هست ببره چقدره؟ بنا چقدر وقت میشه؟ من گفتم گفتم که نمیدونی. از اینم بیشتر ان وراء عالمکم هار الف الف عالم الف الف آدم حالا این الف الف هم که یه میلیون میشه تازه مغز اونها بیشتر از ملیون میلیون تحمل نمی کرد که بگن مثلا ده میلیون ده میلیارد ما هم نمیتونیم اینا را این حساباتی که الان درباره کهکشان ها میگن ما هم نمیتونیم ولی میخوام خوام بگم بشر اینه و متاسفانه هنوزم همینه هنوز اینایی که نشسن در هارفارد مثلا یا در اکسفورد یا در صربون یا در دانشگاه مسکو اونام خیال میکنن خیلی میفهمن و نمیفهمن ما هم خیالم میکنه خیلی میفهمه ما هنوز در خمه یه پسکوچه به کوچه هم نرسیدیم هنوز خیلی راهه و ما من العلم الا قليلا این غرور علم خیلی ضربه زد زربه بشه ضربه های عظیم دلیلش هم شما هر روز برید تو این دانشگاه ها من ده اندازه ارتباط دارم بی ارتباط نیستم جای که در دنیا هست هر روز که برید ببینید این آقا اومده تئوریش با تئوری قبلی فرق میکنه اصلا در امریکا الان کتاب های دانشگاهی چاپ نمی‌کنن جزوه های می میگن چون که نمی‌رسه چاب به چاب عوض میشه حرفا یعنی چی عوض میشه یعنی به حقیقت رسیدن نه حالا شاید یه چیز اما و ما تو اونت تو من العلم الا در باره خدا اومده اینجوری فکر کرده آقای ایکس که در یونال بوده یا که خوده خدا خداست یه روز خواب بود، بیدار بود، یهو از خدای جز ای از خدا منفصل شد عقل اول، بعد جز دو. از اونم یک چیزی منازم، عقل دوبار بعد از اون یا و این حالت فیز تئوری فیض من یک کتاب در باید نوشتم آقای اونی که که به نام العرفان و به عربی پارسی هم ترجیمه شده که این تئوری فیض را پنبه شدیم البته ما چیچ هستیم ما هر چی داریم از احلبه تحریم و تو دوستم میگه میدونی خدا چه تئوری ما رو خلق کرد؟ چه دوی خلق کرد؟ ها خدا مثل یک مثلا موج ای از دریا موج دریا خب خلقه یا خلقش؟ خلقه خودش میفهمید فهمید چیا که مگرد هم نیم فهمید علم دارد به اون که از او جدا شد میگه علمم به اون نداره اینقدر قرآن بصیرن خبیرن سمیعن هی گفته شده ضد این حرفای های بی اساسی که یه عده زدن خب یه خدای اینجوری برای ما تعریف کرده. وقت اینجوری شده اگر از خدای کسی در اومد خب من میگم من پسر خدا هستم. اون میگه من پسر خدا هستم. اون میگه عیسی پسر خداست. اون میگه عزرائیل پسر خداست. خدا اتخذ الله ولدا. این غرور بشره. حالا شما نمیفهمید چه تو شد و چه گوره خدا خلق کرد؟ نفهمیم مگر ما باید بفهمیم آیا ما بشری که مخلوق و خدا هستیم اگر چیزی داریم اگر علمی داریم اگر معرفتی داریم از اونه آیا باید احاطه بکنیم به اون آیا ممکنه این ما که مخلوق اون هستیم چدا با ببینید در مناجات شعبانی شعبانی و انر ابصار قلوبنا به من نظرک ایلیها خدا یاد چشم دل من رو تو نور بده تا من نگات کردم که تو باید به من نور بدی که من به وسیله اون نور رو بشناسم من که از کجا بیارم؟ به تخرق ابصار قلوب حجب النور و تصل الى معدن عظمه و ارواحنا معلقه معلقتا به عز قدسه الى آخر دعای منحجات شعبانیه آقا شما هستی که خورشید تماشا میکنید خرشید خودشو به شما نشون میده یا شما به وسیل نوری که دارید خرشیدو کشف میکنید اونه حالا این مادیه خورشید خلقت بشر و خلقت مخلوقات به یک کلمه کون و یکون این سخت ما بفهمیم که ما یه خدایی داریم که این با یک کلمه همیزو خرص میکنه سخته اما راه داریم بفهمیدن این بله بله راه داریم شدور ها شما بیاد این مخلوقات خدا رو بیرید سیر و سلوک بکنید بشناسید یا آقای فیزیک دو اینجا نشستی؟ میگم آقا سلامون علیکم علیکم السلام میگم آقای فیزیکی شما براید هستید میشه راه من باشه مثل تو خودم گبله بله چه تو؟ میگه ها من اومدم یه اتم رو چکافتم دیدم اون قانون ها و اون نظام ها و اون سنت های الهی که حاکم بر یک اتمه که هر اتمی در دنیا و در غیر این دنیا هر جای هست محکوم به اون نظام ها هست اون نظام ها حاکم بر یک سلولم حاکم بر هست. حاکم بر هست. حاکم بر هم هست حاکم بر یک مرکم هست، حاکم بر یک فیلم هست، حاکم بر یک کوه هم هست، حاکم بر یک دریا هم هست، حاکم بر یک دنیای هم هست، حاکم بر ما هم هست، مرجع هم هست. پس یک سنته، یک قانونه. من از این په می‌دم خالقی یکیه. وقت برم. فدای او برم که خلق کرده یه اتم ذرهبینی که با ذرهبینم نگاه میتونه بکنیم و یا حیوان یک حشره ذرهبینی که با ذرهبینم سخت اونو ببینیم به همون نظامی که یه انسان خلق کرده بهتر ارز کنم بنده و شمام یه روز همین ذرهبینی بودیم خدا اینجوری مون کردیم خب اینکه دیگه واضحه این روز بحث نداره که در هفته دوم این عقاده نطبه بشر از یه مورچه کچکتره بنده با شما هم. همونم الان ما شدیم همونم یه روزی بچه بود بزرگ شد پیر شد باز کوچیک شد و من نعمره و نکسه و فلقل قفلای عقلون شد همون همونه میرم به آی شیمیدان از راه شیمی هم همینو فهمید. یک کسی که وظایف اعضاء بلد است. کسی که زمینشناسه، آسمونشناسه، آسمون شناس، به هر کی ما رو بیاریم از علما، یه راهی رو مارشون میدن، بالاخره به همون می‌رسیم. نتیجه همون می‌رسیم. من اینجا یک تفسیری بزنم برای آقایون که ماشاءالله همه علما و وزلا و و اهل فضل هستن، اینو عرض کنم خدمتون، آقایون، هر کسی خودش راه انتخاب کنه برای خدا رو بشنسید. حیفه، ما هفته سال تو این دنیا باشیم، بعدش بریم معرفت اون به خدا ذره باشه اون طرح. و اگر معرفت به خدا اینجا پیدانه کردید، اونجا دیگه پیدانه میشه، هرچی هست اینجاست. بشنسید خدا رو. برید گل سیرو فالعرض فانظروا كيف بده الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره والى ترجعون. برید نگاه کنید برید دنیوره ببینید، دنیوره ببینید برید این کوها دشتها تحقیق کنید در حشرات در حیوانات کنید در حیوانات چی خلق کرده خدا آبزیان ها برید توی افلاک آسمون ها چی خدا خفل کرد؟ این حرکت شما به توفیق او با اون نوری که او به توان میده خدا رو خوب به شما میشنسونه حیرت صادق صلوات الله یک شخصی بود به نام عبدالکریم ابن ابلعوجا کج بود عب العوجا اسم بود. عوجا کچ این تا آخر هم مرد و مومن نشد حالا بعض این ملاحده که با حضرت بحث میکردن آخر کار مومن شدن. این هست ابن عب العوجا اومد. حالا قصه های زیادی داره. من یه قصه هم یور تلفیقا میگم تاسفانه این توحید مفضل باید درست داده بشه تو این دانشگاه همون، تو این حوزه همون، تو خونه همون اشناسیم خدا اونو اومد حد گفتن اینکه حالا تو یک از یه گفتن اینکه تو مخلوق هستی مخلوق نیستی نه ما مخلوق نیستم یا خب اگر مخلوق بودی تو می چی تو بودی. لو کنت مخلوقا کیف کنت یه چوبی دستش بود شروع کرد این چی بالا پایین انداختن به خودش میگفت طاویل عریض سمیک هی به خودش حرفای میزد که این چوب تورش چقدر گفت باشون ما برو خدا عوضی هم نکرم یکی تورا دیگهش گفت اب دار چرا این کار کردی؟ چی شد؟ گفت چی بگم بهش؟ میگه مخلوق هست یا نیستی؟ گم نیستم میگه اگر بودی ایش بودی؟ خب مخلوق مثل چوب دیگه مخلوق یه چیزیه که محدوده زمانش محدوده مکانش محدوده نیرویش محدوده همه چیزش محدوده منم مثل همین چوب دیگه چی بهش بگم بعدش یه روز دیگه آمد خدمت حضرت بحثی کنه حالا این بخوام بحثای رو بگم ولی آخر کار که اومد گفت انقدر ارزم زمین این قدر این درباره خدا با من صحبت کرد که انهو خدا بین من و او آشکار شد اگر رسیدید به این حال در دعاهای ابوی حمزه اتمالی به جای رسیدید که دیدیدش دل باس شد خودشو به شما نشون داد این کاره این معرفته اما حالایی که معرفتی داریم خوبه خیلی کمه هر کسی باید این راهی پیدا کنه که به خدا نزدیک بشه پیدا بشه همین راهایی که هست هست، ولی راه علمی و معرفت برو تو این سیر و سلوک داشته باشه تو این طبیعت تو خودش در مردم ببینه اونو. اینجا که نشد گفتن پس ما جزع خدا هستیم از ما خدا تراوش کرد که حضرت شاید امیر المؤمنی سلام الله علیه گفته باشند که این سوره قل هو الله احد نسب خداست و کیه؟ قل هو هو یعنی چه؟ یعنی او او یعنی کی؟ اون که دنبالشی اون که در بارش محتار هستی اون که میدونی هست ولی نمدونی چطوره الله احده، سمده، لم یلده، لم یولده و لم یکلهو کفه تو باید از دلت بیرون بکنی که خدا رو به این مخلوقات قیاس کنی مخلوقات مخلوقن، او خالقه اگر خالق مثل مخلوق بود ما دیگه احتیاج نیشیم به خالق همین که مخلوق هست که هست اون هم مثل همین هست او خالقه یعنی هر نقص و هر کمی در مخلوق باشه در اون یقینا نیست بلکه این نقص دلیله که او کامله چون خلق نکردین. اگر بنده خودم مخواستم خلق کنم اینجوری خلق می‌کردم. عمرم محدود، قدم محدود، فکرم محدود، همیزی محدود، نه؟ همیزی را محدود، اولا محدوده. این اتقاد الله ولاده ریشه شرک جهله، یک. بعدش یه ریشه دیگه هم داره، حالا این مسئله جهل رو بر میگردم در واقع آیت عرض میکنم، یه ریشه دیگه هم داره. و اون این است که انسان دلش میخواد اینکه یه سرگردن از دیگران برتر باشه چه کنه؟ چه کنه؟ خودشی به جوری به خدا میشست یکی میگه من پسر خدا هستم خب این ها یادی نحنو ابنا الله یهودی گفتم ما پسر خدا هستم یکی میگه نه ما پسر خدا نیستیم اما پسر خدا قوم خیش من رفیق همه من خودم با پسر خدا فکر کردم که از ذره خدای یوزه. ما چرا این کارو میکنه؟ میخواد بر دیگران فایق بیاد. تعالی و تسامی و براخره خودشو میخواد پوز بده. یک یه دلیل دیگم داره. من خلاصه میکنم از ایزما هر کدوم یه بحثه. یه دلیل اینه که انسان میخواد از مسئولیت ها فرار کنه. چرا گفتن یهودی اومد سر خدا هستی؟ گفتن لیسه علینا فل امیه نمی سبیل ما پسار خدا هستیم بقیه بشر خدا اینا رو به شکل ما خلق کرده که به ما خدمت بکنند ما هر کار میخوام به اینا بکنیم بکنیم خونه هاشونو بگیریم رو بکنیم بکشیم اینجور خدا ما کار ما پساراش هستیم پساراش خدا کاری نداریم فرار از مسئولیت خودخواهی و جهل اینا بعضی از اسباب شرک به خداست حالا اسباب دیگه هم داره ولی وقت داره خیلی سریع میگذره من باید بس انطاله دیگه عرض کنم خدا میفرمادیه و یذ الذین قالوا اتخذ الله ولدا قیران برا اومدن گفتن به چه مراصبت خودتون رو به خدا چسبوندید قریش میگید ما بهتر از بقیه عربها هستیم چون که دور خوره خدا هستیم باشید خدا با کسی قوم خیش نیست یعنی چه این حرفو یهودی ها هم مسیح ها هر کسی جور و ین هشدار بده بگی نه اینکه خدا به شما هیچ محبتی نخواهد کرد خدا شما را عذاب میکنه و ین انداره <تصفيق> خب به چه اون اصفتین رو گفتید؟ خدا خدا، ما لهم بهیم <من> علم علم نداشتن، اینا جهل داشتن خب به چه دلیل تو پسر خدا هستی؟ خب بنده پسر سر فلان آقا هستم میرم شناسنامه دارم ماما بوده، نیموندن بیمارستان بوده، شهاد این دلیلی دارم اما تو پسر خدا هستی به چه دلیل؟ خدا در آیه نسبت بیاودی ها میگه اگر شما پسر خدا هستید چرا خدا اینقدر شما را عذاب میکنه چرا در دربدر هستید شما مثل بقیه خدا خرقتون کرده <تصفيق> یکی علم دارم دو اینا میگن خب ما علم نداریم پدرامون گفتن و پدراتون هم مثل شما جاهل بودن ولال آباهه پدرام علم نداشتن چه اشکان پسر شما جاهل باشه حتی صادق سلام الله علیه اومدن خونه آقای دن یا خونه کوچی که بسیار تنگی چرا اینجا نشستی؟ پول نداری؟ با پول دارم زمین نیست، شهرداری محنم میکنه شما رو خونه بسازید؟ نه آقا هیچی نیست چرا اینجا نشستی؟ با خونه پدرم بود خونه آبا اجدادیم. ببینید کلمه حتی صادق من اجزارت نمیکنم حتی گفتن اگر پدرت احمق بود تو هم میشی. خب اون بیخونه خونه رو گره. اینجور نیست که هرکی گفت کردن خوب کردن بیخون کردن. منم عقل دارم. وَلَا لَأَبَاهِمْ بعدا خدا هم فراد که کلمتا تخرج و من افواهِم اینا متعجیریستن دارم با کی در منتظر؟ با خدا؟ با خدا داری در منتظی؟ که اصل و فصل و اول و آخر همش به رو تو اونه؟ نفس نمتونه بکشه مگر اون بهت اجازه به نفس کشتن بده؟ کبूरत کلمتا این خیلی کلمه بسیار بزرگی که از دهنشون در اومده من اینجا یه حاشیه بزنم تفسیر خیلی وافره کلمات اون باشه یا آقای مثلا نشسته پشت تلویزیون یا آقای دیگه پشت تلویزیون ظاهر میشه میگه این پران شده پدر اینجوری مادر اینجوری نگیت حساب کتابه سآل میکنه کنه وقفو هم انه هم مسئولون شنیدم فرانا شنیدم که دلیل نیست گاهی غیبت غیبت جمعیه شخصی نیست ها جمعیه یعنی چطور مثلا میگم اهل فرانجا اسفانیا یزدیا شیرازیا کشانیا قومیا مشهدیا ای همچه آم اراقیا افغانیا هندیا آم کیو فردای قیامت راضی بکنم؟ چند نفر هستن؟ چقدر باید ثواب بدم از ثوابام؟ یا از گناهاشون بگرم که اون از من راضی بشه؟ یه به حرفمون باشیم هم به گفتنمون باشیم هم معاذب شنیدنمون باشیم یکی اومد یه چیزی گفت زود قبول نکنیم رد کنیم رد نکنیم پاشیم وَالَّذِينَهُمْ عن الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ لَغْبِ باید اعراض کرد از لخم که برد کلمتا تخرجو من افواهیم اینا فقط به زبونی چیزی میگن اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا خدا فرماد اینا میفهمن دروغه و مینگن وجدانشون مخالف این حرفی که دارن میزنن دروغ میگن میبینید یواختی انسان اشتباه میکنه وقت دروغ میگه این دو با هم فرق میکنه اشتباه میکنه خبر نداره چیزی میگه دیگه اما دروغ نه میفهمه دروغه و دروغ میگه خدا میگه اول میگه اینکه که علم ندارن بعدش میگه پدراشون هم علم ندارن بعدش میگه خیلی حرف بزرگی دارن میزنن به قول ماها از دهنشون بزرگتره بعدش خدا میگه اصلا دارن دروغ میگن یعنی وقتی که به وجدان خودش و به فطرت خودش مراجعه کنه میفهمه اینجور نیست و به خود داره میگه این یقولون الا کذبا خب ما اگر روی هر آیه خیلی بحث میکنیم میدرسیم با رمضان تعام بشه ما نتونیم قصه قصه اهلکه نه حالا قصه اهلکه درون بخوادیم صدیق بعضی اون خیلی معانی داره برای ما خیلی مهمه بعضی خورنان کنون لعل فلعلک باقع نفسک علی آثارهم این لم یؤمنو به هاد اسف اصفایی پیغمبر پیغمبر اعوذ بالله خیلی خیلی متعثر میشده ببینید شما یک کسی دوست دارید محبت در نسبت به کسی دیدید یا آقای دیگه اومده به که دهنش رو باز کرده هرچی از دهنش درماده به اون گفتش. ما چه چقدر متاثر بشیم پیغمبر و پیغمبرها خیلی خدا رو بسشتن. خیلی برای اونا خدا بزرگ گرده خیلی نسبت به خدا یوری بودن وقت این پیغمبر میدید اینا اینجوری دارن حرف میزنن خیلی متأثر میشد انقدر متاثر میشد که خدا میفرموند تاها ما انزلنا علی القرآن لتشخا الا تذکرتن لمن یخشد تو وظیفت اینکه که ای چیزی بگی که اونایی که خدا شناس هستند یا میترسن بی و ترس دارن آدم بشن اما پیغمبر میگن نکنه پیغمبر حالا این تعبیر من شاید دقیق نباشه اما ترجمه دقیق نیست فَلَعَلَّكَ باقع النَّفْسَكَ علی آثَارَمْ نکنه پَيْهَمْ بَرَ مَنْ مصطفای من، من نکن خودتو به حلاکت بندازی از حرفهای که دارم میزنن ولی خدا نمیگه از حرفها میگه عَلَى آثَارِهِمْ آثَار یعنی حلا آثاره میعنی چه؟ حرف میزدم بعدش این حرف تحول پیدا میکرد به یک سری اعمال فاجعامیست وقتی گفت من خدا هستم من هر چی میشه فرعون میشود حالا من خیلی داریم فرعان؟ خیلی فرعون داریم این وقتی که خودش مسئول نبینه، وقتی که خودش خدا ببینه، وقتی که خودشو پسر خدا ببینه، هر جوری، هر غلطی می‌کنه و این آثار، بچه‌های شیرخاره می‌گرفتن، زنده زنده دفت می‌کن چقدر باید پیغمبر صبور باشه این قبیله میریخ اون قبیله رو همه قطع آب می‌کن ای چه چه می‌گی دلیب، غارت می‌کن، مردمون میکن. زنای محسن معروف بود دقیقشون حالا قصه هاش بمانند مال و مناد حالا که ما همینه دو همینه داعش که الان هستن همین امروز اینا یه فتوا دادم امروز من خوندم فتوا دادم که کسی که داعش قبول نداره روزه نگیره من این روزش قبول نیست نمازم نخونه مجاهد این هم که دیگه روزه نگیرن مسئله نیست زنای مردومم میگیرن دستش میذاره رو سرش سمتو به تکبیر میگه میگه خلاص شد برای من برداها رو دخترارا رو میگن به هم دیگه میفروشن این این نتیجه شرکه نتیجه این که بگه من پسر خدا هستم ما فقط مسلمون هستیم شب محرم رمضان یه عید رفتن بسری بخورن دیشب زدن قتل عامش کردن 125 نفر کوشش شدن و شهید شدن 100 نفرم نجمه هم دیشه آخه هیچ احساس مسئولیت نداره هم دیگرم بیکشن این آثاره یعنی غلط وقتی که انسان کج فکر باشه کج میشه، هم میشه فلعلک باقع النفسکه یعنی خودتو به حلاکت برسونی علا آثاره یعنی از کارهایی که اینا دارن میکنن که این کارا به دلیل اون حرفای غلطی که دوستن میزن و اون کچ فکری هایی که دوستن اِلَّمْ به بِهَادَ الحديث اسفا. حالا فیغمبر میگه اینو نمیفهمیدید حالا من اومدم بهتون میگم بیات قبول کنید حرفاید چرا باز هم دیگم کسافت کاری میکنید اصفا به حزن و اصف با اندو این آیه یک مطلب رو یه پیام داره من این عرض می و اصل رو کنم پیامش اینه که پیغمبرها تا توان دوشتن تا مرز حلاکت تا مرز حالا تعبیرات دقیق نیست ها تا مرز موت کار می کردن. هر که در توان دوشتن برای مرز سرکان جهت خدا برای اونها باشد <تصفيق> حضرت نوکرام الله علی سن ناس بین قومش فنا به فيهم 1000 سنه الا 50 عام سن از گذشته اون وقت امرشون طولانی بود 300 سال بود هر روز خدا میمد در جایی که اینا مشتمع بودند میگه بوق با این تختها و سنگ پاها رو عبادت نکنید خدای شما غیره بترسید از خدا من یه چیزی میفهمم که شما نمی دونید نوح رو میگرفتن کتک میزدن زخمیش میکردن میافتن یه پسر اما و پسر خانم یکیزی از عقامشان رو یادم نیست دوش میمد میبردش مدواش میکرد یه هفته، دو هفته خوب میشد باز می باز میبند این نصر رفت دست دوم که اومد پدره و پسرهاشون میمردن میگفتن این پیرمرد رو میبینید؟ هر گوش نکنید ها. سه نسل اینا قبول نکردم سه حالا گوریزم بزنم این آقای با امینی نشستند بخواهم دلها را بری این پیغمبر ما ها از حضرت نوح بیشتر زهجر کشید عمر حضرت محدود بود ولی بیشتر زهجر ما اوضی نبیون به مثل ما بودید. چرا؟ من تفسیرم اینه شوید تفسیر دیگه شو باشه حضرت گاهی چشمشون به هرد فاطمه میفتن در و دیوار تدعای می کرد برش چشمشون به هم تشت زهر ایمان <تصفيق> حسین میگفتم، و حضرت عمیر میگفت خیلی حرفه ما حالا بعد از سالهای چیزای میشتونیم تحملش نداریم حضرت میدیدن، گاهی هم بهشون حسن حسین فاقمه علی فردا روز من که برم این بلاها متوجه شما صبر میکنید فلعله که نفس و باز هم تمام چیزی که داشتن بهتر از حسن و حسین و علی و پاتمه سلام الله علی و حالتی چیزی که در طبق اخلاص گذاشتن برای رای خدا حالت امام حسین بیشتر از سرشون و بچه هاشون و علی و چیزی نداشتن گذشتن در راه خدا انقدر پیغمبر ها جهاد کردن تا <تصرف> این دین به ما رسیده خدا ما که تو این مرحله ها نیستیم ولی ما رو در موالین اهل بیت قرار بده